بسم الله الرحمن الرحیم برنامه اختتامیه سخرانیه آیت الله قائنی اللهم کل ولیه که ابن الحسن خداواتو که علیه و علا آبائه في هذه الساعة و في کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا توعا و, توع و ها جهت در فرج مولانا حجت ابن الحسن الاسخری عليهم السلام سلوات قررائخ از اما بعد فقال الله تبارك و تعالی في محكم کتابه و ما كان المؤمنون لينفروا خافا فلولا نفر من كل فرقتين منهم طائفتن ليتفقهوا في الدين بل ينيروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحضرون حجه در فرج مولانا حجت ابن الحسن علیه و السلام صلوات قرائت ختم سلام مجدد و تبریک به مناسبت ایام مسعوده و حجیه که در پیش داریم خدا رو شاکریم که در این جلسه نورانی حاضر شدیم و توفیق حضور و زیارت شما رو توسط دوستان پیدا کردیم الحمدلله رب العالمین که در روایات آمده تفریح و خوشحالی مؤمن در دنیا یکیش لقاء و اخوان است و این از نعمت ها و های خداست به مؤمنین که همدیگر رو زیارت بکنند خب الحمدلله طبق اون چیزی که گفتن جلسات با برکتی در این شند روز داشتی دورانی رو بزروندی مطالبی را و اطلاعات خوب و فراوانی رو منتقل شد به شما و استفاده کردی خدا رو شکر در جوار حرم کریمه اهل بیت بودن خب این توفیقی است که خدای متعال معلوم نیست به همه و همیشه انایت بکند برادر اینو قدر بدانیم از مرحوم امام نقد شدیشون که بود زیاد حرم میرفت. رفت کنی صبح زور از شب نمیدونم دونم حالا این زیاد می رفت هر روز آقا بس دیگه یه بار آدم حرم میره رو که دیگه فردا مثلا دوباره می روش چقدر حرم میری روش فرمیدو بودن توی این حرم یه است. این حرم توش خبرای است. امام جوان بوده با جوان مشویش شما. احتمالا منم جوانم، اما من حالا یکم سفیچونی است، سفیجیار نگو نکنید، منم جوانم. در. تو این حرم خبرهایی است. حالا اون دیده. از جوانی پاک بوده، از اقبال خوش استاد، آیا خوب گیرش آمده؟ و با تصمیم مجدیات. راه رو درست پیموده رضا هم چشمش رو باز کردن هم گوشش را چیزهایی میدید که دیگران نمی‌دیدن چیزهایی می‌شنوید که دیگران نمی‌شنیدند قدر بدانیم در قم بودن را به حرم مشرف شدن را هرچند اگر کسی اهل دل باشه همه جا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها چه می‌خواد باشه چه چاوبهار چه سرخز باشد چه آبادان فرق نمی کند جسم مبارکشون اینجاست توجه و انایتشون جهانگیر از دنیا و برزه و قیامت من یه موقع میخواستم برم یکی از شهرها به یکی از زفا بودم من دارم توفیق جدا میشم خب اینجا بودیم حرم بود جمکران بود حضوران بودن می دیدیمشون. کف نه قصه نه خود تو بری اونجا حضرت معصومه نیان اونجا حضرت معصومه که قوم نیست از اون شهر که بودم من هر روز صبحا بعد نماز از جات مختصر بود به حضرت معصومه سلام الله علاها میکردم و بعد دماره همینطوره اون آرامش و لذتی که اینجا آدم میبره انگار اون جام هست خب قدر خودتان را بدانید برادران طلبگی و بعد وارد این لباس شدن توفیقیس الهی هر کسی رو راه نمیدن حالا ما چه کردیم آمده این نمیدانم دعای پدر بوده دعای مادر بوده است اعمال آبا و اجداد ما بوده است است که بعضا خودشون میورزن بی جهت به کسی موز نمیدن خیلی ها خواستن بیان حوزه نشد خیلی اومدم اومدن تو حوزه میخواستن بمونن نشد خیلی اومدم اومدن رفتند و پشت کردن و بعد تأسوه خوردن به تعبیر مرحوم های تو ما گل پایگانی فرمود کسایی که میان تو حووزه لباس میکنند لباس رو بیرون از حوزه میرن میرن پشت نمیاد اینا خودشون بیرون نرفتن امام زمان علیه احساس و سلام پس کلی به تو قابل نیستی و رو بیرون اینو خدا رو شک کنیم دست پدرمونو ببوسیم و پای مادرمون اونا خواستن که ما بیاییم این شهید بجردیو که دی دیگه خیلی داشت میخواست شهید بشه و همه کارم انجام دادم توسولات گریه همه کار چرا من شهید نمیشم دوزاریش زود جا افتار رفیش مادر به اونا گفت اصرار کرد مادری دلش نه بری، ان بری الله موفق باشی پدر مادر همین دیگه انشاءالله موفق باشی اشتراف بگونی بزرگ بشی فلان به مادرش اصرار کرد پدر مادر رو برد مشهد به امام رزا علیه السلام قسم داد مادری میگه دل کندم دیگه گفتن میخوای ببین برد باشی رفشه باشی بزر دست پدران رو ببوسیم نه گویت شروعی داره با گویت شروع این ظاهر مولکشیم ملک. بود چیز دیگری. پای مادر رو نگو مادر هم دعاتیه بیزه واره یه بردیابه نه مادر چیز دیگری است. پای اونم ببوسیم الحمدلله الحمدلله که امام زمان مالی ما رو پذیرفت ولی من خودم از گونه قابل نبودم کسی نیستم چیزی نبودم چیزی نیستم کاری نکردم. چرا منو پذیرفتن چون خانه ها خانه های ما میزبانه ما هر موقع تو حوضینه بود باید بدونیم داریم, داریم در خانه حضرت میشیم، تو کلاس میریم امینه تو مسجدش میریم همینه ما مهمان حضرتی خدا رو شوش خوب شه کنیم از عمرمون خوب استفاده کنیم آیه شریفه که خونده شد معروفه در علم و فن ازش از زیاد بس میشید لولای تهذیزیه است داد به وجوب و لزوم است که اول از این مؤمنین نیست همه برن حالا کجا برن جبهه برن یا حوزه های علمیه دو جور تفسیر شده این آیه قرآن هرکون باشه هدف از جبهه رفتن یا هدف از حوزه های علمیه رفتن این است که لیتفقهوا فالدین اینو دیگه تو اصول نمیشه ازش بحث کرد ما چیکار داریم آیه مربوط به جبهه است چون آیات قبل و بعدش مربوط به جهاد یا آیه مستقل نیست مربوط به جهاد علمی است رفتن به حوزای علمیه خب بعضی‌ها میگن این به این قرینه بعضی‌ها میگن اون به اون قرینه حالا هر کدوم باشه حالا بالاخره این نفع برای چیه ای تفقّهو فالدین تا نسبت بدین متفق بشوید و یه فقیحی داریم یه متفقه سیر حون معنای علم به باطن پیدا کردن است بایده بایده بایده فلانی آلمه یه موقع میگن فقی آلمه یعنی میداند یقین داند فقیه هست یعنی به عمق مطلب رسید رواهات معروفیست شخص عربی از بیابان ها اومده بود. زمان پیغمبر قرآن کم کم نازل میشه آمد از پیغمبر ببین سوال کنه سوره جدید چیزی نازل شده یا نه معرفت یاد بگیره پیغمبر سرشون شروع بود بکر یاراشون گفتم برو یه سوره به یاد بده اون آقا سوره زلزال رو رقبین یادید. بسم الله الرحمن الرحیم. اونم گفت بسم الله الرحمن الرحیم. اضا زلزلت لعرض و زلزالها. اونم تکرار بکن. تا رسید و من یعمل مثقال ذره خیرن یره. اونم گفت. تقید بعض از روایات این مرده بلند شده. با آبای یا یه دیگه مونده گفت نه دیگه خودش رفت. تقید یک روایات دیگه نه. آیه بعدم گفت و من یعمل مث اون اینو گفت و بلنشو همون ساعته که آقا چطور چیزی که نمیخوادی این جواب نمی بلند شد رفت یه پیغمبر این دوستشینو دیدن گفتن خب به چیزی یاد دادی گفت بله سوره زلزال را گفت و خب چطور بود گفت آقا آدم خوبی بود فقط یه بدی داشت که غیر وقت نذاشونه آیه آخره بخونم تا گفتن به من یه من استاد خیوانگرا بلنشود رفت اون یه آیه دیگه مونده اون تبقیه آیه دیگه نمده اون آیه وعده خونه همون تمام نشده گذاشت بسید من این عمل مثقال این شدنگر این شنید و گذاشت پیغمبر فرمودن فقه هر رجول یا تبقیه نسته اذن فقه هر رجول فرمودن این آقا فقیه شد چرا فقیه شد نگفتن علمه مرتبه گرفت درست جا گفتاد گفتن فقیه شد یعنی کسی که میداند در مثقال ذره خیر حساب و کتاب از بلکه رویت و ملاقات هست پس بدیش هم همین و من یعمل مثل شرن یه رهو میبیند او دیگه منتظر نشد تو بگی یا منتظر نشد کامل بگی فهمید گرفت به قول ماها جا افتاد گوشی دستش نومد فقوه فقیه کسی که امیق بفهمد علاق و ظاهر باطن رو بفهمد تفقه آن است که انسان با سعی و تلاش برود که به اون رو برسد روزه قباس قباس تسوکا میزنی که بره تحیه آب گوهر پیدا کنی یعنی تفقه با به تفاعل یک از معانی تعمل از کاری را با شدت و سختی به خرج دادن است. اورا میگه مردم چرا نمیرن متفقه بشدن سعی و تلاش بکنید فراوان تا به اون رو برسید بی تفقّه فدین فد این تفقّه فقه اصطلاحی نیست که در مقابل اصول است و کلام است و تفسیر و رجال و تاریخ و, و علوم دیگه نه به تفقّه فدین دین, دین مجموعه معارف فقط فقه نیست که احکام باشه مجموعه معارفی که سعادت انسان در دنیا و آخرت را در بر داره زیرا اینکه علم اصول ما رو گفتن اصول فقه این اصطلاح درست نیست اگر منزه از فقه این علم خاص باشه این علمی که ما داریم میکن به عنوان اصول اصول استنباط است استنباط معارف دین از راه ادله معتبر با شیوه های خاص خودش مگر اینکه فقه را فقه به معنی عام و لغبی بگیریم این اصول الفقه یعنی اصولی است که برای فهم معارف دین از عدلده او چه لبزی چه غیر لبزی بدست می آید استلحان فقه عام نه فقه خاص یا بفرماید فقه اکبر نه فقه استر حال استلحات فرم کنم ولیذا اگر به اصول استنباد راحت ترین، علم و اصول هم فقه نیست، شون تو تفسیر هم همینه کلامم هم همینه تاریخ هم همینه ما به این علم اصول احتیاج داریم و بالاخره منابع ما کتاب و سنت است و از حرف اقل اینا که همش منابع به احکام نیست خب ما آمدیم به حوزه های علمیه تا متفقه بشدیم الله تلاش بکنیم فراوان یک به اون برسیم ثانیان خب حالا شدیم فقه در همه عبادش نه فقط احکام ولیون در رو قومه هم هدف از علم و تفقه چیز منور بشویم متاسفانه این رو بر ما نمیگن یا کمگن تو اصول کم استرام کن میرون بولم های اخلاق بشترم تزکنی میشون ما آمدیم حوزه تا چه بشویم حالا معدبانش این که انسان کامل بشویم اونه که نمیده پوسکنده در حق میزدن خبتن ما اومدیم حوزه تا آدم بشیم خدا رحمت کنه های موشتری ما رو مگوه اگه کسی از اون سوال کرد چرا رفتی حوزه برای چی نه رفتم تا عالم بشم بوم رفتم حوزه تا آدم بشم بعد مگوه اگه کسی مگه من آدم نیستم جواب بده نه آدم درست داریم بعضی ظاهرشون آدمه بعضی علاوه بر ظاهر باطنشون هم آدمه من میخوام برم آدم بشم خدا رحمت آقای مهدوی کنی و من اول طلبگی بودم تهران رفتم دم یه خیاطی پارچه گرفتم برای اولین بار خواستم مؤمن بشم یه آقایی بود به نام نکوگویان اسم معروفش شی شیخ وجبلی خیات اون نمیشناخت رفتم خیاطی لباس برام بدون گفتم آقا این لباس برم گفت چی بده گفت عبا قبا برام بدوز گفت برچی میخوای قبا پوشی، گفتم آقا حوزه رفتم گفتم برچی رفتی حوزه گفتم که اینکه عالم بشم گفت این خیاطه به من گفت نمیخوای آدمشی آقای من که من نوجوان سنی کم خیلی بهم من بود که خیات نمیدونم آقای کاسه به تو چه مد بود دهن تو بفر تو کار تو بگم برخوای میدوزی یا نمیدوزی خرایی میدوزی بدو چی کار داره من بچه رفتم موزه گفته نمیخوای آدم شی از تو درک کرده آقای مهده اهلش این ترابیا هست اش گفته بلا به هر کسی اون نمیگه گفت نمیخوای آدم شی همین ترجمه لیون برو رو قوم ها منذر بشی حالا وقت کمی نمیخوام بحث تفسیری بکنیم کسی میتواند منذر اسم فائل بشود که منور باشد قبلن کسی که خودش به مقام انذار نرسته چگونه میخواد دیگران رو انذار بکنه؟ انذار میدونید یعنی چی؟ پیام دهشت زاویه تکان تکاندهنده یه آس سر تو بکش کنونه اومد یه طرف دیگه شجه میزنید او زمین نخوره یه کاری میاد شما بچه های زمان جنگ و جبهه نبودیم که صدای خونپاره شنیده باشید خونپاره قبل اینکه که بخور زمین به صدای قبل از او صدای زودتر میاد صدای او میخواد میخوابن برفاس دست رو گوش میخوابن او زمین که بالاخره هر جا میخوره به این صورت پرتاب میشه به اینا نخوره خبر مهم دارای خطری که اگر زور اقدام نکنی حلاک میشی این میگن انذار چه کسی میتونه مردم انذار که اگر هر زد مردم دیگه گناه نکنن از گناه بفرسن دنبال خلاف نروند که خودش انذار شده باشه قبلی چرا این مفرنده این همه منبر میام؟ هیچ اثر نمیکنه مردم همون مردم هم. ربا، رشبه، دروغ، نگاه به نامهرم، بدگوی، تهمت. خیلی کارهای دیگه. چرا؟ آقای خودم انزار شده هم هم مردم انزار کنه. بعد خودم بعد منذر شده باشم. تا بتونم منذر بشم. نظر باید بیام طلبه بشم. اول یاد بگیرم بدن خودم بلرزه؟ بعد همینا رو رو منبر بگم سر کلاس درس بگم تو کتابا بنویسن دیگران وقتی شنیدم دو خوندن دیدن بدن اونا به خدا رحمت مولای دست خوبی کتابی داره به نام معاد خیلی هم ساده است خیلی در حد عوام 25 کلاس و 5 کلاس هم بخو میفهمه تا الان که دو از طرف تا خود دو بار خوندم آدم لرزش میگیره خیلی هم ساده است هم به قیامت هر مولای دستو شهید محتوان. این معلومه باور کرد. که برای عبامونا تو مسجد هم در توبار نوار بوده پیاده کرده شده معاد خیلی ساده نه بحث فندی داره هیچی نداره هیچی کلام ساده بود و اثر داده و مردم توشون اثر میکنن انظار میبینن لذا ما آمدیم حوزه تا خودمون اول اثر بپذیریم بعد به دیگران اثر بگذاریم فقیه بشویم متفقه در دین بشویم تا اون موقع لیون زرو من وقتی خودم منظر نیستم فقط مدرک و اصلاحات و واحددار رو پاس کردم. مدرک گرفتم اما نگوناه میکنم خدای نکردی دروغ میگم غیوت میکنم بدبینی بی جایی دارم و و و کی میخوام جامعه اصلاحش؟ با حرف من اسلام می شود. اگر منو با حرف زدن اصلاح بشون این همه تو دنیا دارن حرف میزنن کجا جوام اصلاح شده حضا من باید منظر خودم عمل بکنم، ببینم در من اثر میکند یا نمیکنن و الله پیجهد آمدم قوز معطلم روایات اول کسول کافرو بخونیم کسی که علم بیاموزه به عمل نکند ارتحلن و وزرو و بال است. وزرو و بال یعنی مثل وزم سنگی نمیتونی رابطه وجیرا ما بهشت می‌خوام میریم ان دیگه جهنم که نمی‌خوام جهنم هوا گرمه اصلا من که اصلا به مزاجم نمی‌شستم من با هوای گرم سازگار نمی‌شستم راحت یا اون یکی باشه لیره باشه کجا با هواای گرم بعد بهشت آدمو را نمیدن بعد آدمایی که عادی عادی میرن بعد مدتی میرسن اونایی که علم دارن عمل نکردن وزوبال است میلی‌متر میلی‌متری بعد راه بدین زج بکشی تازه اونجا حسابت با کرام کاتبین است علم با عمل ان شاء الله عمل کنم یه طلبه اومد خدمت آقای بهجه به زبانه رو طلب کرد آقا معجزه کنی آقا فرمودن چه کاری بود طلبه گفتن کلاس شین بود سال اولم فکر برو گناه نکن این خجارتی خجالتی بود روشن نشد چیزی رو رفت یه سال دیگه اومدم خدمت آقا از dedim آقا یه معجزه بفرمایید میرستم دیدم من هم فارسی گفتن کلاس چند بودم سال دومم گفتن آقا گناه نکن یه دوره روم رو چیزی بگم رفتم سال بعد اومدم خدمتشون مسجدشون بگتم آقا یه مععزه فرما کنم سال شندوی گفتم سال سوم طلبگی فرمام برو گناه نکنم میگه دیگه روم چرا سه سال مهمیم گناه نکنم آقا اینو پار سال مثلا خیال که آقا یا فراموش کرده یا فلان تا ما آقا سال اول اومدم گفتی گناه دار یه چیز دیگه گفت نه تا روز قیامت هم ب رو گناه نکن و ما اینم همین امامه بود کاری داره 40 بار دیگه 6 ماه 6 ماه هم کاری نداره یه دو هفته نظرم یک کنیم. لباسام که هر مدلی به بخری فقط میدم برات می‌دوزم. اصطلاحاتم کاری نداره فهمه سخن وغلو فلان وعلان ادبیات. اینا که کار درست نمی‌کنه. اینا که طلبه توش درست نمیشه. حالا اصطلاحات ظاهری ما بگم تخصص روزم داشته باشه اون دکتران بگیریم آیت الله بگم تو همین تهران یه بود تو تا هم رفیق بودن یه بار میگه میدهی رفیق هم نیست دیوم شد نه ایمد. نه مباعثه نه دست نه مدرسه تو مدتها ندیدنش بعد مدتها پیداش کردم فونون کجا رفتی بی خبر نه به ما چیزی گفتی رفت تو قیبت زدی اصلا حوزه شدی. گفت نمیگو به زور بهش گفتم مثلا از من وعده گرفته به کسی نگم گفت چی من یه روز ظهر درس ها و مباسه تمام شد سر حوض اومده بودم وزور بگیرم یه جوانی آمد گفت فلانی خود تو آماده کن من از طرف حضرت آمده ام. یکی از یاران حضرت از دار دنیا رفته حضرت من از کسی رو جایگوزین او بکنم. حضرت تو انتخاب کردن فردا همین موقع آماده شد که بیا با هم بریم. یعنی من که ساکم و کارام کردم و بیگه هرچی لازم بود. فردا هم بایستم جوان آمد و الان من در خدمت حضرتم. بعد خود این جوان میگه به خدمت حضرت رفتم. این طلبه میگه که اون رفیقم به من گفت. از حضرت سؤال کردم چی شد که منو انتخاب کردیر فردم تو دو تا قسطت خوب داشتی. حتی تو جوش شاگرد اول اون بوده درسش هم خوب بود نمره بالا مثلا یکی این که برای خدا درس می‌خوندی درس می‌خونده آیت الله بش حجت الاسلام و سید ثوبه امام توقی وکیل نه این خوشش من دارم میگم گفتم برای خدا درس کنم دو کارای طلبه ها رو انجام می‌دیدی ظرفاشو نمی‌شستی کف شوش واکس می‌لیدی و حجشونو تمیز می‌کردی تو والو تمیز می‌کردی اصلا علاقه کارهای طلبه میکرد او الان از اون موقع به بعد الان که در خدمت هست هم خود در میان این همه حضرت فقط خواهد یه دونه رو باید ببرن اگه بقیه طلبه نیستن درست نمیخونن کلاس نمیرن واحدار پاس نمی کنن به قول امروزی ها تو باره تو همین تهران یه حوزه علم دیگری بود که طلبه میگه من نصف شب بلان شدم نزگه سهر که وزور بگیرم نماز شب بخواهد اومدم تو حیات دیدم خادم مدرسه که اتاقش توی معینه بود او چراقش روشنه شب وقت روشن نبود ولی روشنیش خیلی قدیه خیلی روشن درخشنی زیاده نمیشه نزدیک شد نمیشه وارد شد در ترپیل من تعجب کردم خادم امشب چرا بیداره مثلا شب که بیدار نبود و چراغش هم چه پر نوره که یکی وزون گرفتم و رفتم نماز و بودم و مبارس و مطالعه و کلاس ها و رفتم ساعت در یازدر که همه کاران تمام شد رفتم پیش خادم گفتم آقای خادم بیشتر بیشتر چرا بیدار بودی؟ گفتنم بیشتر دم سهر اتاق چراغ روشن بود؟ گفتنم هر چی گفتم انکار میکرد گفتم انکار نکن من دیدم سهر بیدار شدم اتاق روشن بود صدای حق زدنم میآمد ولی نورشم خیلی شدید من نتونستم نزدیک بشم دیدم من انکار نکردم که از من وعدی گرفت تا زندن بیشتی که به کسی نگی بودم دیشب چه خب بوه هیچی حضرت تشیفه و هم صحبت کرد گاهی موقع حضرت تشیف کی خادم مدرسه خانم از چیکار میکنه؟ سقف میشه، جارو میکنه، تمیز میکنه، توالت میشه، این کارو میکنه که خادمو هم نه. چرا یک طلب قابلیت نداره حذر دیدن، دیدن یک خادم مدرسه میگه؟ این گویا که خادمو مدرسه خجالت میکشه. از کجا این پیش خدا رو سفید باش من نه، من اخو پوز دارم با خودم. حجت الاسلام، آی, ای دکتر رئیس فلان، فرمانده فلان نمیدونم، نماینده رهبری رو، من داشتم همین دیگه آدم تو, تو آدمو تعریف می‌کردم خوشید تو گفتم بصورت خوشو آدمم اخماشون تام ناراحت بشی من به خدا تو کار نیستم نفس تعریفم بکنم خوشم اینا خوشم بدم بدم خدا کجا کو زیاد بدم میرم دعوت هم ما دوستو مؤسسه نگاه میکنم خوشش بیشتر میره اینجا واهیدی چقدر مینه واهید همجا خوب همینجا تلفن می‌زنم آقا بله بنده حاضر ان شاءالله در خدمت شما خیلی در خدمت نفسی نه در خدمت این حوزه خدا رحمت کنی شیخ رجبه خیات شد بعد از رهدت آی برو در خواب بیداریش میگیدم گفتم آقا شما ماشالله تشیج جنازتون خیلی شروع و بین بود. دیگر بچکار کرده بودید از جنازتون این از چلکیلومتری اونم سال شست سال قبل جمعیت نمیتونست قوم بیاد جارده ها پر بسته آقا چه کردید فرمون طلبه ها رو برای خدا تدریسی میکردند؟ اینا معنی تفقه و فهمیده بودن اینا منذر شده بودن و لیون رو هم هم ادارجاو الهی هم بعد لعلهم هم یهزه بعد این کلا شما کلام شما لعله اختزاز زمینه این رو دارد که بگید مدون بترسند باور باورنم تهرانی آقای ودون ما حاجی سراج این مفاتیح دیدارشی بعضی اسم ایشونا ها ترجمه های قرآن مفاتیح دعای کومل فلان پیرمر رود محاسن صفی خیلی پیر من باور نم می ایشون میگن همین شوره میکرد به منبر همین زنجیره گیر دیه من شنده بودم باورم یه با توی جلسات رفتم همینطور روزانه می خود با صدا معمولی حرف میزن ولی حرف و قیافه و شروع صحبتش حق همه جلسه نه یکی دو تا فقط چهار پنج می زدن سیر گریه آجه ها سراج بشه الان نمیدون از این منبعه پیدا می شما اگه می کنید اگر داری دسترسی دارید که قیافش انسان رو بیاد خدا بینید واقعا نگاش می کنی بدن از همین بسم الله روزه رو نگفته عشقه ها جاری بشه این تفقه هفت دین با این که روزخان هست اطلاع برادرها، مسئولیت من و شما خیلی تو این دور زیاده اونقدر زیاد که پیغمبر چشمش منتظر من و شما چرا؟ علوم پیشرفته زیاد ماده سیستم های مختلف ابزارهای مختلف برنامه های مختلف روش های مختلف تصویری و صوتی الفاظ و اصطلاحات و و و دارن مردم رو از خدا به دور ارفانهای متعددی باید کتابی به ما دادن ارفانهای نمیدونن مسیحی یهودی کارو اصلا صفحه میشموردم خسته شده چارسان کونسد سرده بیشتر شده بود بیشت کونسد سرده اکسای رهبر هر فیرم در هر جای دنیا نوشته بود ارصن درست کردم یعنی چی مردم رو اصل حقیقت برسون همه حق بازی همه سر از جا انگلیس در میاره آمریکا یا اسرائیل آمریکا اینرسی میشه بمسر از اسرائیل در میاره کسی واسه دین خود حمایت بکنه و اثبات بکنه و دفاع کنه و حق رو همون طور برهانی به مردم بگی منو شما دیگه کی میخواد بکنه این کارو بنانیس از آسمان کسی بیاد و بارها تو همه مدیس خودیم حضرت آقا تا موقعی که ماها آماده نباشین تشریف نمیارن خدا 13 تا مصمول فرستاد چه برای سرش ن رو بودن بر. چه می چی بپستید؟ می یعنی نگاه کنیم که چند ماه این دولت جدید رو دو تا تعبا اجاب کنه در او فوش فش میدنم. هم. همین متدعنا همه حضولله یا همین کواه خوبای ما چه خبر آقا دارن میگن که طرح این اولش این آغازش اینه روش چین زمانش اینه، حیمد دوران امتحان امتحان دیگه حالا رو روغن گروه شده فلان چیز کپتین نشده این مسرونی همه کار رو دارن میکنن مؤمن ها دارن چیکار میکنن الان تو دنیا همه بر علیه اسلام بسیج شدن داعش درست گردن فیلم های مختلف انواق خب کی میخواد اسلام را معرض کنه به دنیا خود معصوم که قایب دیگه و خدا وعده داده تا مطمئن خود مردم نخواهن نمیفرستند 12 قرن گذشته خدا صبرش زیاد است 20 قرن دیگه هم که خدا نکنه خدا کنه ما غافل نbudیم از خواب بیدار شیم دیگه بس مونه چقدر بلا کشیدیم چقدر محرومیت چقدر دردهایی داریم دواشو نمی‌دونیم چه چه کنیم عشق میریزین جواب نمیگید یا الله میگید نمیشه دار همون راهیمینه چقدر آخه دیگه آخه مولا باید سرپرست ما باید بیار ما یتینین پدر مادر لازم داریم دیگه هنچنان ما رو کنترل میکنن برای حفظ مول میکنن به شیخ مفید اگه ما پشت داری شما نبودیم لست کلمت کن پرستتون میکردن شما رو شما کسی نیستی در مقابل دنیا و کفار له ما شما رو نگه داشتیم خب کی میخواد زمینه رو آماده کنه کی میخواد اسلام رو تبین کنه من و شما هستیم دیگه بلیسا حضرت تشریف نمیارن حضرت موقع میارن که به تعداد در آن دیویست تا کشورتون هر کشورت هم ده تا طلبه دو هزار تا طلبه عالم موفق روز فعال داشته باشه حضرت آقا تو برو اوگاندا تو برو آرژانتین تو برو فرانسه تو برو آلمان تو برو ایتالیا تو برو نمیدونم ژاپن تو الاخت تبلیغ حضرت که بناسی از آسمون کسی بیارن خود ما باید درست میده اصواهی دست حضرت بشیم. بشید همین همینجوری هم حالا روایاتش انشالله خوندید یا میخوانید حضرت به کمک همین مبلغ لازم مدیغ لازم داره حضرت نباید به علوم رو آشنا باشید نباید زبان بدانی نباید فرهنگ های مردم ها رو بدانیم نباید گروه آلا اصد خوب فهمیده باشیم تو همه رشته ها تقبات خصوص ها فقط همین احکام خالی نباید اونا رو بدانیم چرا کی؟ دوازده قد گذشت دیگه دوازده قد گذشت ما باید آماده بشیم که الله قابلیت پیدا بکنیم که حضرت به ما بگن این کارا بکن این کار نکن اینجا برو اونجا برو زمین و زمان در و دیوار و دنیا رو بر علیه حسان تبدیل میشه با چه شگردایی روز الان داریم میبینیم این تو جوان شب مومن میره خونه صبح منافق در میاد صبح مومن از خونه میاد بیرون شب منافق بر میگرده یعنی ظاهرش مسلمونه باطل مسلمونه این میگه منافق الان نشدین تو تو فامیل میبینیم تو محله میبینیم تو شهر میبینیم همه خیلی زیاده اون که منطقی باش حرف میزنیم، نه آقا غالباً میگن آقا تو حالید نیم. نه برو سایت ها رو ببین کجاها رو ببین حتی جوون 16 17 درس باش تو صحبت می‌کنه آقا غالید نیست اونم تو بیاد تو کلمه حرفا مرا حالید بکن آقا نمیشه عمل کی این درست اون درست نه نفر میگفت آقا این حرف چی آقا رادیو اسرائیلونو گفته رادیو آمریکا و رادیو انگلیس گفت آقا جمهوری اسلامی هر میگه درصد غلط در آمریکا و انگلیس و اسم جا افتاد اصلا فکر عوض شده شستشوی مغزی شده لازمیه که مغرزم باشه از بس بینی نشستی اینا رو گوش کرد ما اخونو اگه جاذبه نداشته باشیم بیان به روز نداشته باشیم مسلح به علوم روز نباشیم چجوری میخوایم اینا رو هدایتشون کنیم اونا با انواع و اقسام چیزای خوشگل من یادم یا سال 69 تازه کامپیوتر اومد تو اون گردن خیلی و قشنگ میذارم روی یه دونه میبینم صفحه شد سبز مینم یه قرنه یه با خود ای, ای خوشاله الله اکبر جلال خاله. ای اسم خاصی پر نمیگم اینو یه چیزو تازه بعد جنگ اومده او کامپیوتر خیلی رو با این صفحه با اون صفحه با این حرف الان خیلی امور خودتونم با این چیزهای مجازی تا در ارتباطید ریشه تمام اعتقادات ارزش‌های حتی اخلاقی انسانی نه اسلامی برن از بین دارن میبرن. کی باید اینا رو تا باشه که اول اسلام بر خودش خوب حل شده باشه فهمیده باشه سانیان بیان داشته باشه سالسان جاذبه داشته باشه بتونه تبلیغ کنه اسلام رو بتونه تبلیغ کنه و بگوید اسلام چیست و مستدلن باشه کی این کارا رو باید بکنه الب غیر از حوزه های ایمشون کجا میشناسید تو دانشگاه من یه کار می به برکت حوزه های است هیچ اساس علمی و حوزه علمیه یا چند سوابی در اینجا درس خواندم تدقیق شدن منش خدمت شدن دو سال پیش من یه حوزه علمی بودم شهید سلیمانی اعلی مقام شهید شده بود جلسات و ختم و مراسم زیاد می اومد طلبه ها تو اجازه چیکار مثل مثل شهید سلیمانی بشین گفتم هر کو نزدید چرا بوزه است که سلیمانی می پرورم نه اینکه که خودش سلیمانی بشه جناب سلیمانی آمده تو حوضه پیش دو نفر، سه نفر، چند نفر امام، امثال امام دیده، نفسش به اینا کرده، اراده کرده، تصمیم که افته عبد خدا بشه به وزیر داره، بوده نظامیش عمل کنه. تو با لبه باب ما که بنامیست خودم رو به سطح سلیمانی برسونیم. ما باید تو هستیم جوری تربیت بشیم که شنابنده سخنان ما بشن صلح ها مسئولیت من خیلی بالاست خیلی بالاست. سال ۸ رفتم در راه. ساتون آمریکایی آمریکایی‌ها بودن. اینو میخوام برای این میگم که قبض خودبونه بدون نه تا دشمنا ما حساب می‌کنن. نگوی ای طلبه این تو تبریز و گوش اردبیل و دارم دارن رو فلان چه ای می‌خونن ما به کدونخه. خیلی کار ما می‌تونه بکنی به اذن الله. وقتی بودم اونجا رفتم بغداد. به تاکسی گرفتم از حرم آدم بیرون. آخه نووا و ارب هر چهارتاشون تو بغداده. مرحوم کلینی هم در بغداده. تو طل صبح تو در باز به این مقدار هم صبح تازه این 4 تا 5 تا قبر رو من نشون رو ببر خوب رفتم مسلط بودن دیگه صدام بود و مسلط بودن دمی کنار یه پلی که رسون من با این ماشین اومدن جلو پلی رو گرفتن کاربان نظامی خواست رد بشه من تاکسی نشستم راننده تاکسی من هی شوخی شوخی تند تند قدم زدن هی می که این می جن میره جن من گفتم آقا نرو جلو وایسا گفت نه تا بره ما رد میشیم دیدم از این سربازا از روی وای عتش اومد پایین و با این دو گنداقه تفنگیش محکم زد رو کاپوت این ماشین تاکسی ما گرفت و محکم گفت استاپ استاپ استاپ گفتم آقا چیکار می‌کنی می‌زنی گفت نه آقا نمی‌زنم گفتم یعنی شما بچه‌ها گفت نه آقا شما تو ماشین نشستی نمی‌زنم گفتم چطور حالا اون رانه تاکسی بغداد بود کاظم گفت نه آقا این فرمانده فرمانده‌هاشون به اینا گفتن هر با یه ژنرال احترام اینا رو داشته باشید گفتم عجب پس یه چند خور خیریه گفت اینا بهشون گفتن هر اخوندی یه ژنراله گفتم آقا افیاد مو رو به تو بخشید اینو میده جلو نیست اما ژنرال رو چه شوخی با چی می‌کنیم اشغال دیگه بالاخره آمریکایی بیفته زورشام زیاد ستونام داره میگذره و به زور محمد میگه واسه نبرد دنیا داره رو ما حساب میکنه رو حوزه علمیه قم داره حساب میکنه رو همه حوزه های علمیه موت شاید بتونم بگم شاید ولی غالبا در اکثر حوزه‌های علمی جاسوس پیدا شده برای اسرائیل و انگلیس و آمریکا گرفتن بازداشت کردن از اطلاعات مجبور شده این موارد دخالت بکنه یه نظارتی بکنیم که تو حوزه‌های علمی جاسوس و نه علمی طلبای خارجی که مله عمر توش در بیاد اینا ظاهرا متصونه مسوجهتی دست چند از و اینجا بود یعنی این پیدا شده رو مجبور کنترل بکنن بله جاسوس میفرستند که چی ما رو از درون خالی کنن چند سال پیش تو یه حوزه بودم جاسوس اسرائیل گفتم آقا با چه کنم گفتم من صحبت میکنم زبان یهودی میخوند و فلان و باوشم بود و خوش زبانم بود هر کار کردم نشد بالاخر منتقل به یه مدرسه دیگه تا تعطیلش کردن نه یاد و فلان اثر نکرد یه مرسی اثر نکرد فلسطین نه شهری دی اثر نکرد و به اوزشو خواستان ولی اسرائیل کار میکنه اخبار حوزه رو هم توی یه شهری روی اسرائیل میره حالا کم دارن چه میکنن بله اسرائیل دارن روی من و شما کار میکنن روی انگلیس ما ساده اینجا نشسته این اگه ما کسی هستیم بله به ازن الله اگه خوب درس بخونیم وزیفی شناس باشیم روز باشیم خوب اقدام بکنیم ما پایه های قدرت استکبار رو میتونیم بشکنیم آری میتوانیم آنچنان که اصل ایران آزاد شد و منطقه را آزاد میشود می و به اذن الله هست همه کار اوست انایات ویژه هزت هست بلی قابلیت ما رو لازم داره ما یه تو میدون برادران تفقه حرف دین تفقه چیست هرانچه که مربوط به شناخت دین یک و مطابق ما آیه تبلیغ و انتقال معارف به دیگران دو سه ساختن دیگران بر اساس معارف دین انجام می شود، باید انجام بدیم لذا باید خوب درس بخوانیم. یک خوب بیان کنیم بنویسیم تبلیغ کنیم منتقل کنیم دو خوب خودمون رو مهذب کنیم که مردم ما رو ببینن احتمال بدن خدایی در کار هست مفهوم امام نقل می‌کنن تو این درس تفسیرشون ما والا ها کاری کنیم که مردم به آخرتشون شک کنن بعد تا این آقای خونساری که تهران بود هست اشاره میکنی. این آقای خونساری که از احمد خونساری از اولیا بود این آقای اسحمد خونساری یه بار تو مسجدش مدرسه ها کجا نشسته بود یکی از این تجار مؤمن و متدین یه بار اومد رو در گوشای خونساری آقا اگر از اون بر خبری نیست به مام بگی خودونو به زحمت زیاد ننداز اینا شما اخوندو یه چیزی ببینید شک مو آخرت هستی اونا بچو خود به زحمت بریم نماز بکنم روزه بگیریم ربا نخوریم رشوه نگیریم به نامحرم نگاه نکنم غیبت نکنم خودش چه بگیره دیگه اگه خبری نیست به مام بگید بعد امام فهموم چرا بعد این باشه که من که تو دوستای خودم میرم تو شهر خودم تو محله خودم حرکتی از من سر بزنه که منم شک بکنم از خدایی هست یا نه. ما مال خودمون نیستیم ما آبروی دینیم چه بخونه؟ یا این تو حوزه نی آمدیم؟, آمدیم؟, آمدیم؟ حالا که آمدیم یه به ما میگن طلبه خدا رحمت و آقای مشتری میگوه بطله نباشی، طلبه باشی من که فرق طلبه با بطله چیه؟ تبوه جا شبز شده یکی طلبه، یکی بطله بطله یعنی کسی امرو میگذرونه فقط وقت میگذرونه کچه نساخته طلبه اون که طالب جوینده است بخادر پیدا کند هم معارف را هم تعارف نفس را علم هم و یو زکی هم هر دو رو میخواد بره تو این دو سجهت موبت کار بکنین برا درها حالا چه علمی بخوانیم اون علمی که مورد نیاز جامعه است. خدا رحمت کنه آقای خصوص شاهی رو مورخ و نویسنده توانایی بود گو من در سایه طلبگی همه رو خونده بودم در خارج استادا و کجا بچه عالم بود به یه علتی که دنبال اجتهاد نرفتم اشتراق مصطلح این بود گويت لو کاشانی رو دیدم سید عبدالقاسمی کاشانی در عراق مبارزه کرده بود در نهضت نفت در ایران مبارزه کرده بود همراه با دکتر مصدق گو بهش گفتم آقا شما با این علمیتی که داشتید با این موقعت که تو نجف داشتی چی شد رفتید تو سیاست اومدید ایران و لبنان اله آخرو اگه میموندی جز مراجع نمی‌شدی چی شد آمد فرمود مگه همه کارها با مرجعیت درست میشه این همه ما مرجع داریم چرا مشکلات اسلام پسر نشد چرا هم نشد اسلام ابعاد مختلف مگه فقط احکامه مگه فقط تهارت و نجاسته اقتصاد نیست سیاست نیست مدیریت نیست تربیت الان چرا گسه است بین پدران و مادران با فرزنده وجود اومده جمعون بابا نه چرا صحبت بکن واقعا من با پسرم باید ما هم میگیرم آره ای بابا با این روی شیر سنده آقا گشتی هست آقا کشتی آقا قباحت داره نه کجاش قباحت داره من چیکار بکنم با این پسر کچیکی میگیرم. خواهم خواهم. من قانون میگیرم اون منو این من میزه گای میگه او پیروز میشیم نه هم می من پیروز شدم من پیروز شدم پسر بزرگی عقلش بزرگتر میفهمم ادب می کنم کشتی میگیرم همیشه میگم چون که من نفهمم کاری کنم من زمین میگم که داخل دوم هم شده تو کشتی اما در این حال یعنی کمربند سیاه میگه شما اینقدر درست نفر این ایران هم نخا دوم شده تو کشتی تو وزن خودت و میفهمم ادب و حیان جون هم قدش هم بزرگتره اول وزنشون این میشه مقدار یعنی میفهمم میتونه منو بپیشونه ولی ادب میکنه میفهمم جای حساس داشت میکنم و جوری که من بزنم اون رو زمین خوشحال میشه باباش باش کشتی میگیره یعنی منو تو یکی الان بابای ما اینجوریه بچه‌جون خفشو عف نزن برو دهنت گوشیر میده بچگی تازه از فلانش فلانی شده میخواد به من چیزی یاد بده آقا چه خبری گفتن بچه 14 تا 21 سال توست یعنی عین توست اینجوریه تو نه میخواد دهنتو وا کنی حالا کلمه یاد گرفتین مدرسه رفتیم میخواد به من چیز یاد بده خب ای بده چیزی یاد بگیر چرا قی در مادر و جوونه این علوم تربیت تو حوزه نباد درس از قرآن نباد در بیاره سنت نباد در بیاره علوم سیاسی همینطور با دنیا چجوری برخورد کنیم با موشک با ذلت هر دو قسمش تو این جمهوریستان تجربه کردیم کجا شعر باشیم کجا سرب باشیم دلیل میخواد آیه قرآن میخواد با استدلال باید باشه تو اقتصاد چه کنیم در بانکار ببند یا نبندیم سود بگیریم یا نگیریم قرارداد باید جوری باید باشه تربیت چجوریه اجتماع چیره آقا موسیقی چه کنیم نقاشی حکمش چیه مجسمشازی حکمش چیه آقا تو کتاب نوشتن حرامه خب بر چه اساسی؟ اگه معصوم گفته بود ثابت سریع واضح بود خب ما برای حرامه روایتی ظاهر دارد اختلاف نظرم هست فوتبال آقا چه حکمی داره؟ پانوها برن تو ورزشگاه اونا نگاه کنن او جواب میخوان مردم نمیشه باقا قبیح هست ملعون خبیس برو یعنی اگه یه جو به داشتی جواب و خبیس چیه؟ برو چیز یا دوگه هاشیق ولد نیستی چرا وقت تفخون شده جواب بدیم کی میتونیم جواب بدیم خوب خونده باشیم اعتقاد پیدا کرده باشیم اهل عمل باشیم اونم اون گوش میکنیم لاقل احتمال من راست بگن و کی اینها رو باید یاد بگیرد کجا تو همین علمیه اون کس که این در خدمت قرآن و سنت و اکامه عقلی هستن تفقق باید پیدا بکنیم. این همه الان ما سوال داریم یکی از رفاقه ما داشتون خدا رفت مجد ادار دنیا رو این فلانی یه نفر تو لبنان پیدا شده یک یهودیه سه تا آیه و قرآن اختراک کرده با قرآن مگه نمیگه تحدی هرکی میتونه مثل این قرآن بیاره ده تا سوره بیاره یه سوره بیاره سه تا سوره بودن ال ایمان از تصریم از توحید یه صفیه هم بود گو متاسفان تو سایت ها اینا گذاشته بودن این مال 2025 سال قبل گو از کویت جواب دادن نویسنده جواب بده ما رو محکوم کرده از عربستان میصم هم همین تو از شیعه هم کسی جواب نداده داد به ما من 11 تا یکی 16 تا یکی 13 تا ایراد ازش گیرتم ادبی و عقلی نه تعبدی چیزی بود که همه بپذیرن گفتم بفرست حالا تو سایت بده گو اینا به عنوان قول میفرستن الان داره تحدی میکنه گفت حالا قبلی‌ها بلد ندوده ما بلدی یعنی زیرا به ما رو میخوان بزنن نباید ادبیات ماقوی باشه نباید منطق ماقوی باشه نباید سبک بحث ما به روز باشد نباید با این ابزار جدید آشنا باشیم نباید به زبان بلخرو دنیا یه زبان خاصی داره نمی‌شه شما با زبان خود حرف بزنید روایت هم داریم تو هر محلی می‌ری سعی کنه همگام و همزبان با اونا بشید تو حرفتون اثر بپذیره تو بخواید با مود خودت حرف بزنید یه مرغ چرا از من سوات رو پای منبرم نمی‌شینه و یکم تا هم نزدیکی به اونها شو عادت از لباس اونا رو بپوش آن می میذونم رو سرت بذاری یکم با کاری که به حرام نکشه نبود هم رنگ اونهاشو دل بهت یکی یک بگه، بگی او زبانم همینه روشم همینه. زبش من من یادم میاد قبل از انقلاب یه یک بار یکی از فامیلا اذا بعد, بعد جزء منافقین شد و در رفتو و آخر یه نقار موسیقی آورد میگفت الله حالی. حرام از اومد از اتاق برم بیرون راست هم گفت بیخیال این چیزی بازی ها نمیدونم قدیمی بازی ها در نره الی آخر و اینا رو خب معلومه اون سنم کم بود دربیرستان می‌رفتن نمیدونن تو سن بدم به بهمون گفتم موسیقی هم حرامه ولی خب بله بزور بشین اون نظر اون گند اشکال نداره انداز شما اشکال داره خب بشین ایرادشو به من بگو چه ای میگم مقدس اردبیلی من عالم بزرگ یه بار دو اشعور متای محل گرفتار شدن گفتن می‌خوایم اینو آقا رو امشب خلاصه به گناه واردش کنیم توی یه خونه پیدا کردم فر آلات موسیقی اینا آوردن شرابم آوردن یه زن فاسرم آوردن گفت آقا امشب این صفه غلام بکنی مرجع تقلید زمان من شبونی چه میکردی این گفت خدایا مرگم را برسان چون مرگ را برسان نه درست مقابله چو مقدس عل تا اومد دید گرفتار شده راه بسته در آم قفل چه کنه؟ گفتن آقا امشب بعد تا گناه کنین گفت چیه؟ گفت یکی اون که باید شراب بخوری. یه دعایی روزه که اون شراب به سرکیش. گفتن باید موسیقی هم گوش کنیم جور که اون رو ندم تو چوب پنبه تو بوشش کرد اون چیزایی اینا نششته. گفتتم با این خاان باید فحشا کنی. خانم ها بهش گفت سیقه من تو رو میکنم برای این مدت به این مبلغ قبل و ولی اونگه قبل تو تو ببینید درست شد کار حرام نکرد تغازه مرگم از خدا نکرد این مثال یه شوخی تو جامعه میزه همینه آقا من آمریکا نمی روم چرا؟ چشمم به نام حرم میخورد حرام هست بابا حرام هست اونا دارن جلو اونا دارن افت ناموس منو دارن میگیرن من تا کجو عقب نشینی بکنم بر اونجا سر تا پایم بنداز اگه بابا موسس صدام نبود تو لبنان خیلی مدرسه کرد خیلی سعی می‌کرد مونعش کرد و نشد محمود شهید مطهری همین چرا ما دختر زمان شاه چرا ما دختران میگن مدرسه نرسن تو افتتشون حفظ بشه به دخترم یاد میدم برو مدرسه سخنرانی خون اونا با افتت بشن متاسفانه امم شاگرد مثل کم داشت با این تفکر من بعد برام تو میدان دلیل قرآنی هم داره در جنگ تبوک پیغمبر اکران فرمان بلند شد بریم جنگ با روم رومی ها خیلی ها گفتن نمیایم گفتن چرا گفتن یار رسول الله این رومی ها خانماشون خلاص از اون مدلانه ها خیلی خلاص درجه خونم ان هم ششاشون هم ماشون ما بیایم اینجا خلاص منفعت میش به اول ثواب شاید نست است یار ما رو مؤافتا که میخوام نمیخواد به نام حرم بره خدا پیغمبر گفت است باید به نامحرم نبودم نگاه کنه برای اونا زرمشه تو شبیا خود تو نگاه نکن توی یه کاری که اونا بتهرسن زناشون یا حجاب دارن که درد برن خیلی که من چشمم به نامحرم می‌کنه جیپ نرم قرآن سحیح قرآنه یعنی چشمم به نامحرم این قر اونجا خلاص این خانم‌ها این شکلایی هستن و ما یاد بهشت نیفتیم و یاد جای دیگه نیفتیم بله نه خودت رو نگه دار خودت درست کن تا کجا انفعا به عقب نشینی بعضی موارد که میگن عقب نشینی کنید برادران از آن است وقت بوزش تفققه در دین وظیفه من و شماست و این وظیفه سنگین است خوبیش اینه که اولا خدا پشتیبان ماست خودش ما رو دعوت کرده مگه میشه ما رو دعوت به کاری بکنیم زمینش آماده نکنه و سانین های مردم دنیا سالم است غالبن بفهمن میپذیرن الان چرا ماهبار ما را قطع میکنن شما که این همه ما هزاران دارید حالا ایران یه الکوسر دارو برونه و و, ال دار و از سهر دارید همین میترسن اینا رو قطع میکنن چون حرف ما اگر به دنیا برسه مشتری داره. حالا شما دقیق کنیم مثال بزن وقتی گذشت. چهار پنی سال بیش برای اولین بار تو اروپا بر علیه اسرائیل راه بمایی کرد اون جنگی زدون شهر رو و بچه های زیادی کشتی شده بود. چرا؟ ایران برای اولین بار تمام فیلمارو گوزش رو ما و به کل دنیا که اسرائیل بچه کش و آدمکش است سندش هم اینه تو همه دست هموناست دیگه واسط ارتباط عمومی ما نمیدونستن اسرائیل هم کنازه ظاهر میشه اروپا میمونه دیگه شیک و هر کی رفته میگه به به و رو بهش زمین همین اینو رو ببینید نمیذاشتن برای اولین بار مردم اروپا ترافه ایمانی کردن همه کشورها همه زمینه غالب کشورها فرانسه، آلمان، انگلیس، اتریش، بلاد برعلیه اسرائیل مخصوص فضازیا رئیس جمهور همیشه یونستن اینا نمیذارن گوش شنوا تو دنیا زیاد چه تو آفریقا چه آمریکای جنوبی آمریکای شمالی ما حتی الان تو آمریکای شمالی حوزه علمیه داریم آمریکا نفهمند کسی نمیفهمد زبان نمی شنجو تو آمریکا الان حوزه نمی داریم ولی نتابلو مثل جه مؤسسه امامزاده صد نه تو خونه ها به عنوان شبنسینی به عنوان فلان تو خود کشور آمریکا. مالی بیست سال قبله و آراد شمه بار بیشتر شده توسه من نمیدونم من تاشون رو دیدم من هفت نفر رو آوردم به یه آقای گفتم که تا همون سازاموگاه اینوان کجا آوردی از آمریکا؟ گفتم اینجوری شدم کردی؟ نوستمون شدم آه نه نه نه نه کجا. شدم ولی چی تازه مسلمان شده اگر بفهمن اسلام این حرفو داره اینا دین خوشناتی در اینا اسلام مطرح درستیه 3 تا بود گویا چشمور مراحل بعدی گفتم چجوری تادیس میکنین خود آمریکا خود از ما رو آوردین همین قوم آورده بودن میسازون بغله جاده چی گفت اینا رو از اونجا آوردین تو خونه ها حوزه داریم ما حوزه می داریم دنیا ها سالم است گوشش نواز یاده ای برادران تو همه رشته‌ها رو باید بریم. تو بدن رشته فراوان است با بار جامعه شناسی روان شناسی تربیتی اخلاق سیاست حقوق بین الملل که ما بتونیم حقوقمون از دنیا بگیریم ما ندارم تو بچه ضعف داریم ما تو زبان در دنیا و در دادگاه پلیس بین الملل و زبان و قانون دنیا با وقت حرف بزنی رو بگیریم نمیدنم ما نیمگه او المدعی له سلاس علامات حالا شما خوندی لمعه 20 گرفتیم به درد دادگاه نمیدونم اروپا نمیخوره اون یه قوانی دیگه دارن یه جور دیگه حرف یه جوری دیگه ما اونا رو باید یاد بگیریم کنوانسیون حقوق بشر حقوق کودکان و بعد چیزهای دیگه یاد بگیریم نقطه قوت و ضعف با زبانه رو بعد بگیم کی اینا رو باید بخونه چه کسی باید اینا رو تمدید و تبلیغ کنه و بر من شما از زبانم واجبه من خودم توفیق نشد، گفتم کامل برم یاد بگیرم و با مشکلات رو نشد. جز واجبات زبان یاد گرفتم. الان میگن ای کاش علامه یه زبان خارجی بلد بود، توسعه علمیش بیشتر بود. همش ترجمه سقاوی و متحدی هم همینطور، آقای صدر هم همینطور. روز بعضی اشتباه در ترجمه ها بوده، یه جور دیگه بیان شده. زبان باید یاد بگیریم. به طباطبایی زبان بعدی گفتم سه تا خودم چی، یکی ترکی، زبان نانته. دیگه چی گو زبان فارسی گفت ایرانی که زبان ایرانه گفتم طلبه‌ای نگیریم زبان فارسی خب زبان غیر اینا گفتم سه تا زبان برادم فارسی، ترکی، عربی گفتم خوب خدا قبول خوبه یه طلبه‌ای گفت من 5 تا انگلیسی و ژاپنی گفتم ها این شد؟ اینم از خود بود هم فارسی برام بود هم ترکی هم عربی انگلیسی و ژاپنی گفتم این سه تا که زبان مادریت ته تقریبا عجبو کشاورز ترکی هم زیاد دیدیم و کشور فارس ما رو کم داریم ولی امده زبان خارجی را داریم آقا الان ما جاپن... چین میخواییم مبلغ برسیم نداریم زبان چینی بعض اون فلسط یکی دردن ایکی دومای برگشتن آموزش دادیم. دادیم منتظرن اونجا از شیز هم خدا رحمت کنه شهید خجو سین همه دانیا. اونم بعدو میگه بابا مردم شروع بودیم ما قضا شیعه بودیم حکومت که مسلط شد ما رو سنی اینجوری کردن عالم بفرستید الان چند تا طلبه عالم گفتم بشه بشت که زبان بلد باشه و دین ما هم بلد رو چه زبان و حرف زنه چند تا رام کنیم ببینیم بترسیم اونجا تا ما شیعه خود مردمشون میگن همونش hey, میگه یک مکاسبه امتحان میدیم رسول نمیدونم کفایر داره معنا میکنیم ترتوب و نظر اخون شی آقای ناینی حالا اینا میاد ببین بعد تو اون رشته ها الان میگن بابا بیا شیعه تو آذربایجان شوروی تو چچن اینگوش داغستان روسیه تقاضا میکنن یه تاجر می تو گریه میکنن گفت بفرسین عالم روحانی اون مسجد ها باز شده روحانی ندارن مبدل نداره منبری ندارن میخوان بعد به جای ما کی میره عربستان میره. ترکیه میره همه رو وهابی سلفی بابا خود پوتین اومده گفته گفته ما دین عربستانو نمیخوایم همش جنایتی شما ایرانیا بعد ما بفرستید همین آقای پوتین گند نشون داد اون کار کرد الان هم وقتی شماساا سن نتون بگذره زن بگید و بچه فلان دیگه مشکله همه الان باید یاد بگیرید زبان. حالا فعلان زبان انگلیسی هست آلمانی فرانسه روسیه چه زبان حال ساحلی فلان این زبان های عادی زیاد زیادم شده زبان کده ها خیلی زیاد هست. این وظیفه ما یک علومی که مورد احتیاج است باید بریم بررسی کنیم جاش خالی عنی نکن واجه که پایتونواجب عینی دیگه دو سعی بکنیم این علوم مورد نیاز را با ابزارش یاد بگیریم. اهل بیان باشیم. اهل قلم باشیم. اهل تبلید به معنای آم باید باشیم. ارزش در که بندگی خدا کنیم. نه اینکه که تو قوم بشیم و آیتولو بشیم و بیت باز بکنیم. بیت و چی باز کردیم ما؟ خدا رحمت کنه ما. امی آخرین کلام هم. فهم ندارم چرا بالای شام مبارزه می بیرونتون کردن کردم عراق حالا می دانم بیرونتون می کنن دنبال من دنبال من خدا به نجف نچسباندم من دنبال وظیفه شرعی هم کشتی به کشتی جزیره به جزیره خواهم رفت و پیام مظلومیت ملت ایران را به همه دنیا خواهم رسون من نمی دانم مرجع بشن مرجع بشم. مرجعیه که اسلام زنده رچی ما دست می میخوام می خوام آیت الله بشیم عکسمون پولمون نمی احتراممون موقعیتمون شرک هم اینا همه شرک اینا خب تشکر میکنم از جناب حاج آقای دکتر معینیان و برادران نعیمیان و دیگر برادرانی که دستن در کارند و مسئولینی که این دقده ها رو دارن یک آشنا هستن دو دارن زحمت میکشن این زمین ها بر شما آماده بشه سه خدا انشالله توفیقشون بده و قدر دان اینها باشد که هست قدر بده از عمرتون برادر از حالا تصمیم میگید یه رشته خاصی با تعیین کن بر خودمون خلعه ها کجا کجاست؟ نیازها کجاست استعداد من چیه برام دنبالش توکت و علی هرچی هر چی میخواد بشه به هر جا میخواد منجر بشه ما باید وظیفمون رو انجام بدیم از خدای متعال خواههنین که به همه ما توفیق آشنایی با وظایف و توفیق عمل به وظیفه عنایت بفرمایا صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبینش شاهد من الله که بری جوابات مفصل شده و بعد نماز نهان هش که جوابات نتایج میگیری و دیشب پریم. دیروز یکی اگر میتونی ابراهیم ببین و هش فردا که زن تو دوست